دوستان من واقعا شیفته این هستم که چطور عیسی هرگز نگران آبرو و اعتبار خود نبود و هرگز بر سر شخصیت خود سازش نکرد. میبینیم عیسی با کسانی دوستی میکنه که رهبران مذهبی حتی به اونا نزدیک نمیشن. کتاب مقدس به ما میگه که عیسی حتی با گناهکاران و باجگیران به مهمونی میرفت و اجازه میداد حتی فاهشوها و جوزامیها به اون نزدیک بشن. متشکریم که در کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس با ما همراه بودین. ما بررسی کل کتاب مقدس به انجیل یوهننا رسیدیم. در درس امروز خواهیم شنید که ایسا چطور تمام قواعد فرهنگ اون دوره رو میشکنه و با زنی سامری صحبت میکنه و مرد علیلی رو در روز سبت شفا میده. به درس امروز گوش کنید و توجه کنید ایسا چطور با این زن برخورد میکنه و خبر خوش رو به اون میده و میگه که مسیح موعود خود من هستم دایما اینه که شما هم مانند زن سامری به شناخت عیسی به عنوان آب زنده نائل بشید به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید 4 با باب انجیل یوحنا عین گفتگوی عیسی با یک زن سامری رو بر سر چاه و اهمیت اون رو برای ما شرح داده. در این باب زیبا یوحنا با ثبت یک گفتگو دوباره به ما چیزی رو میگه که در باب اول قول داده بود. یوحنا در هیجده آیه باب اول گفت که درباره آمدن عیسی با ما حرف خواهد زد و اینکه اگه مردم به عیسی واکنش شایسته نشون بدن نجات خواهند یافت. یوحنا در باب دو این رو به طور تمثیلی برای ما به تصویر کشید. در باب سه در مورد گفتگوی عیسی با عالم یهودی برجسته به نام نیکودیموس با صحبت کرد و در باب چهار یوحنا در مورد گفتگوی عیسی با زنی در سامره صحبت میکنه در هر دوی این بابها و گفتگوهای ثبت شده در این دو باب یوحنا از دو شخص کاملا متفاوت با ما حرف میزنه که به خاطر واکنش مناسبی که به عیسی نشون دادند تبدیل شده و تولد تازه یافتند با به چهار با گفتن این شروع میشه وقتی خداوند فهمید که فریسیان شنیدند که او بیشتر از یه یا شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید میدهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید میدادند نه خود او یهودیه را ترک کرد و رستبرد جلیل شد او برای رفتن از اورشلیم به جلیل باید تمام طول اسرائیل را طی می کرد و در سر راه باید از سامره عبور میکرد. از اونجایی که بین سامریان و یهودیان دشمنی و خصومت دیرینه‌ای وجود داشت. بسیاری از یهودیان متاسب موقع رفتن به جلیل، صامره رو دور می‌زدند. اما باب چهار انجیل یوحنا میگه که عیسی داشت به جلیل می‌رفت، اما سامره رو دور نزد و مستقیم از سامره گذشت. این خیلی مهمه چون نشون میده که عیسی داشت به شاگردانش چیزی در مورد تعصب تعلیم میداد. وقتی عیسی به مرکز سامره شهر شکیم رسید، جایی که چاهای یعقوب در اون قرار دارن به رسولان اجازه داد که برای خرید غذا به شهر برن. اگرچه در بازگشت اونها خود عیسی نخواست که غذا بخوره. شاید اونها رو به این دلیل پی غذا فرستاد که میخواست گفتگوی خصوصی با زن سامری داشته باشه. من معتقدم اگه ما گفتگوی عیسی با زن سامری رو بخونیم میتونیم مطالب زیادی درباره باره روش های گفتگو از عیسی یاد بگیریم. اولا ملاحظه می‌کنید که عیسی خودش رو وقت به این گفتگو کرده. عیسی تعصبات فرهنگی خودش رو کنار گذاشته و از راحتی خودش چشم پوشی کرده. ما می‌خونیم که ظهر بوده و او بسیار خسته بوده و احتمالا هوا خیلی گرم بوده. عیسی کاملا وقت کسی بود که می‌خواست باهاش گفتگو کنه. فکر می کنم او این وقف شدگی رو با تنها موندن در اونجا به ما نشون میده. شما شبانان وقتی با کسی گفتگو می‌کنید بعضی وقتا مردم تا کاملا با شما تنها نباشند حرف نمیزنند خیلی از مردان هستند که حاضر نیستند، در حضور همسرانشون حرف بزنند و زنانی هم هستند که نمیخوان در حضور شوهرانشون حرف بزنند زمانهایی هست که خیلی خوبه با کسی که صحبت میکنید تنها باشید در این گفتگو با زن سامری میتونیم بصیرت ایسا را هم ملاحظه کنیم. او همیشه به اوض نگاه میکنه و در مورد گفتگو با این زن هم همین کار رو میکنه در اون هوای گرم اینسا سر چاه اومده تا آب بکشه. او تشنه هست و زن هم تشنه هست. حالا دیگه او با یه عالم صحبت نمیکنه بنابراین از واژههایی مثل تولد تازه استفاده نمیکنه. من معتقدم ایها در واقع همون چیزی رو به اون زن میگه که به عالم یهودی گفته بود. اما اون رو به یک روش اظهار نمیکنه ایها تولد تازه رو برای او با زبان تمثیلی بیان میکنه تا او بتونه بفهمه عیسا او رو به صحبت درباره واقعیت تشنگی زن میکشونه. او به این واقعیت اشاره میکنه که زن بارها و بارها مجبور برای رفع تشنگی برای کشیدن آب به سر چاه بیاد. او به زن میگه که دوست داری آبی داشته باشی که آتش تو رو برای همیشه رفع کنه؟ من همیشه با خودم فکر کردم که آیا امکان داره که این زن الکلی بوده باشه؟ اگه شما الکلی بودید و مشروبی بود که در تمام طول زندگیتون شما رو سیراب میکرد آیا این تصویر زیبایی از یک تولد تازه نبود؟ وقتی عیسی با زن حرف میزنه او درک نمیکنه که عیسی چی میگه بعد به عیسی میگه ای آقا آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم در اینجا عیسی به او میگه برو شوهرت رو صدا کن و به اینجا برگرد زن پاسخ میده شوهر ندارم. عیسی میگه راست میگویی که شوهر نداری زیرا تو پنج شوهر داشتهای وه آن مردی که همکنون با تو زندگی میکنه شوهر تو نیست آنچه گفتی درسته چرا ایسا اینو مطرح میکنه بسیاری از ما شبانان وقتی او میگفت از این آب به ما بده دعای نجات رو برای او میخوندیم و او را به عضویت کلیسا میپذیرفتیم اگه او اعلام میکرد که این آب رو میخواد ما درخواست عضویت او رو رد نمیکردیم اما عیسی بهش میگه برو شوهرت رو صدا کن چرا چون اینجا باز مسئله ای رو میبینیم که قبلا در گفتگوی عیسی با زکا و گفتگوی او با مرد جوان ثروتمند دیدیم یعنی مسئله ی توبه بدون توبه او نمیتونه این آبرو داشته باشه آب حیاتی که میتونه تشنگی او رو در تمام طول زندگیش سیراب کنه با توبه ممکنه اگر روش گفتگوی عیسا رو ملاحظه کنید میبینید که علاوه چیزهای دیگه ای که بهش اشاره کردم به عنوان یک گفتگو کننده شخصی رو راسته. این بار هم ایسا به جایی میرسه که زن رو با زندگی خانوادگیش مواجه میکنه. او قبلا پذیرش بی قید و شرطش را نسبت به زن نشون داده. ایسا قبلا به او این اطمینان رو داده که به بهبود وضع او علاقمنده. وقتی کسی را از پذیرش بی قید و شرطتون مطمئن کنید، وقتی به جایی برسید که لازم بیپرده با او صحبت کنید، خواهید دید که، اونا میتونن این سراحت رو به راحتی بپذیرن. عیسی به عنوان یک گفتگو کننده نه تنها سریح صحبت میکنه بلکه راهنمایی هم میکنه. راه های متفاوت دیگری برای مشاوره هست. چون که نظرات مختلفی در مورد چگونگی مشورت دادن به مردم هست. شاید بشه به صدها مورد اشاره کرد. من وقتی دانشجو بودم چیزی که به سختی یادم میاد اینه که اون موقع روش مشاوره بدون راهنمایی بود. و تنها چیزی که مشاوران به مردم میگفتن کلمه اوه اوه بود یکی میگفت زنم پاش شکسته و من مجبورم او را حمل کنم و مشاور فقط میگفت اوه اوه دیگه چی؟ تمام چیزی که مشاورین میگفتن این بود که خب باز هم چیزی داری بگی؟ بدون اینکه هیچ راهنمایی نمایی بکنن راستشو بگم من همیشه فکر میکردم که این چنین مشاوره یبلهانه است به نظر من عیسی مشاوری نبود که راهنمایی نکنه ملاحظه کنید در گفتگوی عیسی با اون زن عیسی چطور رو راهنمایی میکنه او زن رو متوجه مشکلاتش میکنه که مشکلات او در واقع گناه بود او زن رو برای راه حل راهنمایی میکرد که همون آب حیات بود و در فرصت مناسب او رو به طرف منجی هدایت کرد در جاهایی از این گفتگو زن میگه خب من میدونم که روزی مسیح خواهد آمد و وقتی او بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت و عیسی به او میگه من همانم من تعجب می میکنم از کسانی که میگن ایسا هرگز ادعا نکرده من مسیح هستم عیسی در این گفتگو ادعا کرده که مسیح است. اونجا که میگه من که با تو صحبت میکنم همانم ایسا همینطور به او میگه اگر میدانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب میخواهد حتما از او خواهش میکردی و او به تو آب زنده می کرد وقتی با خدا صحبت می کنید از او چی می تلبید؟ چیزهای کوچک و بی اهمیت؟ اگر با خدا حرف می زنید، باید از او چی بخوای؟ اگر واقعا ایمان داشتید که با خدا حرف می زنید، از او چی می عیسی برای او روشن می کنه که او ناجی هست و اگر او فقط اینو بدونه از او حیات ابدی رو خواهد خواست، از او نجات رو خواهد خواست، آب زنده رو خواهد خواست. او همینطور زن رو به براتر از تعالیم مذهبی راهنمایی میکنه وقتی به مساله زندگی خانوادگی او میرسه یعنی بر گناه او و به لزوم توبه او اشاره میکنه همون کاری رو میکنه که اغلب مردم انجام میدن وقتی شما اونها رو با لزوم توبه مواجه میکنید او مانعی الهیاتی ایجاد میکنه و میگه شما یهودیان میگویید باید خدا رو در اورشلیم عبادت کرد اما ما سامریان معتقدیم که همینجا در کوه این باید خدا رو پرستید. در این مورد چی میگی؟ به نظر میرسه که اینجا زن میخواد بپرسه این برای من همیشه جای سوال بوده. کی درست میگه؟ مثل اینکه امروز ما بگیم کدام درست میگن؟ متدیست ها، باپتیست ها یا کاتولیک ها؟ آیا تا حالا با چنین کسانی مواجه شدید که وقتی نمیخوان با مساله گناهشون مواجه بشن، موضوع صحبت رو به این قبیل مسائل میکشونن؟ وقتی زن این کارو کرد ملاحظه کنید که عیسی به راهنمایی کردن ادامه میده و او رو به چیزی فراتر از نهادهای مذهبی اون دوره هدایت میکنه. عیسی به او میگه ای زن باور کن زمانی خواهد آمد که پدر رو نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. خدا روح است و هر که او را می‌پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. عیسی این زن رو به چیزی فراتر از نهادهای مذهبی هدایت میکنه بعد وقتی این زن تبدیل میشه یا تولد تازه پیدا میکنه عیسی او رو به طرف خدمتش راهنمایی میکنه یکی از زیباترین چیزها در مورد این گفتگو با زبان زیبای نمادین و رمزی یوحنا بیان شده همانطور که در مقدمه گفتم وقتی نوشتههای یوحنا رسول رو میخونید باید همیشه دنبال امیقترین معانی بگردید من معتقدم که یوحنا اینجا هم از زبان تمثیلی استفاده کرده وقتی که از مسئله سبوی آب اون زن صحبت میکنه. وقتی او برای گفتگو میاد سبوی آب او نمادی از تشنگی او هست و البته تشنگی او فراتر از تشنگی برای آب بود. این حقیقت که او پنج شوهر داشته و حالا با مردی زندگی میکنه که شوهرش نیست تشنگی میقری رو به ما نشون میده. سبوی آب نمادی از تشنگی او هست او در ابتدای گفتگو، شگف زده است که چرا عیسی سبوی آبی نداره اگر سبوی آب نمادی از تشنگی یا نیاز هست بنابراین شما میتونید بگید که در این باب عیسی مردی بی نیاز هست شاید این به این معنی باشه که عیسی مردی بود که هیچ نیازی نداشت و مانند اون زن تشنه نبود زیباترین آیات در این گفتگو میتونه آیات 28 و 29 باشه اونجا که میگه زن سبوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت بیایید و مردی را ببینید که تا به حال کرده بودم به من گفت آیا این مسیح نیست اون نزد مردان سامری میره و به اونها میگه بیایید و مرد حقیقی رو ببینید مردی که تمام کارهایی رو که کرده بودم به من گفت رازهای دل منو باز کرد او با قلب من صحبت کرد بیایید و این مرد رو ببینید و بعد میبینیم که مردم میان و به خاطر حرفهایی که این زن به اون آزاده بود به عیسی گوش میدیدن اما بعد میگن ما باور میکنیم اما نه به خاطر حرفای این زن. ما خودمون حرفای او رو شنیدیم و ایمان داریم که او منجی جهانه. او همون مسیحای معود هست. در این گفتگوی زیبا باز هم میبینیم یوحنا چیزی رو به ما میگه که قول داده بود بگه. وقتی مردم واکنشی شایسته به ایسانشون میدن دوباره متولد میشن. این باب تولد تازه زنان و مردان سامری رو نشون میده که این زن از مسیح با اون حرف زده بود من معتقدم این گفتگوی زیبا دو تجربه بزرگ زندگی رو برای ما شرح میده بزرگترین تجربه زندگی تولد دوباره هست و بزرگترین تجربه بعدی تبدیل شدن به کانالی هست که توسط اون دیگران تولد تازه رو تجربه میکنند عیسی این را به زیبایی بیان میکنه اونجا که به زن میگه اما هر از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد زیران آبی که به او می‌دهم در درون او به چشمهای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید و دیگران هم از آن آب خواهند نوشید به عبارت دیگه نه تنها از نوع متولد خواهی شد و تشنگی خودت رو برای زندگی سیراب خواهی کرد بلکه تبدیل به چشمه‌ای خواهی شد منبعی از حیات که دیگران هم از آن خواهند نوشید و سیراب خواهند شد تمام اینها در باب چهار یوحنا برای اون زن اتفاق میافته وقتی او خودش تولد تازه رو تجربه کرد، عیسی او را به طرف خدمتش راهنمایی کرد و بعد او به طرف مردم سامره رفت و اونها را به سمت عیسی هدایت کرد. وقتی این گفتگوی طولانی رو که حدود چهل و دو رو در بر می‌گیره به طور خلاصه بررسی می‌کنید، همون سوالاتی رو بپرسید که در باب‌های دیگر یوحنا هم پرسیدی. عیسی در این باب کیه؟ عیسی در این باب آب حیات هست. عیسی از آبی هست که تشنگی شما رو در تمام طول عمرتون برطرف میکنه و بعد درون شما به چشمهای جوشان تبدیل میشه که تشنگی دیگران رو هم رفع میکنه. این عیسی در باب چهار روم هست. آب حیات. یکی از محرکه های زندگی بشری تشنگی هست. بنابراین رفع تشنگی یکی از نیازهای اساسی ما هست. اینجا در باب چهار یوحنا ما این شکل زیبای گفتار رو میبینیم که عیسی مسیح آب زنده‌ای هست که تشنگی شما رو سیراب میکنه بعد به محض اینکه از اون آب زنده خوردید، اون آب در درون شما تبدیل به چشمه جوشانی میشه که دیگران هم میان و از اون آب زنده سیراب میشن. توسط عیسی من و شما میتونیم دو واقعیت بزرگ زندگی رو تجربه کنیم، تولد تازه پیدا کنیم و تبدیل به وسیله‌ای برای تولد دوباره دیگران بشیم. این هویت ایسا در باب چهار هست. ایمان در یوحنا به چهار چی هست اولا من فکر می کنم وقتی ایسا به این زن میگه اگر میدانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خوهد حتما از او خواهش میکردی و او به تو آب زنده عطا می کرد در واقع جواب این سوال رو به ما میده پس ایمان درخواست کردنه. ایمان مثل نوشیدن آبه هر بار که شما یک لیوان آب می خورید تصویری از مفهوم ایمان رو می بینید. فقط با نوشیدن اون شما میدونید دونید که سیراب خواهید شد پس اونو می نوشید بعد وقتی اونو نوشیدید، تشنگی شما سیراب میشه. البته وقتی عیسی به گناه این زن اشاره کرد، جواب ای برای این سوال می بینید. در تمام گفتگوهای عیسی، شما این را می بینید که چیزی به نام ایمان بدون توبه وجود نداره. وقتی او میخواد که از این آب بنوشه، عیسی میگه برو شوهرت رو صدا کن این باید مطرح می باید توبه انجام می چون براساس این داستان ایمان با توبه ارتباط داره. بعد باید بپرسید حیات در یوحنا باب چهار چیه؟ حیات تجربه کردن دو رویداد بزرگ زندگی هست، تولد دوباره خودتان و تبدیل شدن به وسیله برای تولد دوباره دیگران. حیات رها شدن از سبوی آبتان هست. همه ما تشنگی های خودمون رو داریم و کاربرد اینجا اینه، وقتی شما به مسیح میایید و دوباره متولد میشید از سبوی آبتان رها میشید تشنگی شما برای حیات سیراب میشه و شما تبدیل به وسیله برای رفع اتش دیگران و تولد تازه آنها میشید اینجا باید از شما بپرسم آیا دو رویداد مهم زندگی رو تجربه کردید آیا تولد تازه یافتید و آیا تاکنون وسیله ای شدید که توسط اون دیگران تولد تازه رو تجربه کنند؟ این چیزیه که در خور تعمله، این مضمون در کلیه بابهای انجیل یوحنا به زیبایی بیان شده. باز هم به خاطر بسپارید که در باب یک در مقدمه یوحنا گفت که چه چیزی به ما خواهد گفت. او گفت که وقتی عیسی آمد، وقتی مردم او را پذیرفتند، وقتی به او باور کردند و پاسخ شایسته به او دادند، از نو متولد شدن. یوحنا در بررسی باب پنج باز هم از این مضمون با ما صحبت خواهد کرد. باب پنج به ما میگه که وقتی عیسی به اورشلیم رفت به جای انگیزی به نام حوز بیتهستا رفت و ما میخونیم که در ایوانهای کنار حوز گروه زیادی از مردم علیل و کور و شل و افلیج میخوابیدند. اونجا مردمانی با هر نوع بیماری رو میشد دید. مردان مذهبی که به معبد برای پرستش میرفتن از کنار این مردم علیل با تمام بیماری هاشون میکردند. میکردند دوهنّا به ما میگه که ایسا نمیتونه از اونجا بی تفاوت عبور کنه و مجبور میشه اونجا بیسته و از میان تمام این بیماران عبور میکنه تا اینکه به مردی میرسه که احتمالا ضعیفترین شخص در بین اونها بوده و بیش از هر کس دیگری اونجا انتظار کشیده بود او به مدت 38 سال اونجا در انتظار بوده این مردمان علیل و بیمار اعتقادی داشتند که شاید اعتقادی خرافی و موهوم بوده اونها در ایوانهای اطراف حوض دراز میکشیدند چون معتقد بودند که هر از گاهی فرشته ای نازل میشه و آب رو به حرکت میاره و اولین کسی که پس از جنبش آب به درون آب میپرید شفا مییافت این مرد بیچاره 38 سال بود که اسیر این خرافه موهوم بود اما هر بار که آب حرکت میکرد او کسی رو نداشت که به او کمک کنه تا به آب بپره او به عیسی میگه من کسی رو ندارم که به من کمک کنه این غمانگیزه که کسی فکر کنه که کسی رو در زندگی نداره که به فکر او باشه و به او کمک کنه همیشه کسی پیش از او به آب می پریده و او در این مدت نتونسته بود وارد آب بشه او ۸ سال بود که این وضعیت حوزانگیز رو تجربه میکرد عیسی این مرد رو پیدا میکنه و از او چیزی می پرسه که به نظر ما سوال عجیبی میاد عیسی از او پرسید: «آیا میخوای شفا پیدا کنی مرد شاید گفته باشه تو چی فکر می کنی؟ من 38 ساله که اینجا هستم اما اون مرد اینطور نگفت مفسران این سوال رو سوال مهمی میدونن چون کسانی هستند که نمیخوان شفا پیدا کنن و نمیدونند بعد از اینکه شفا پیدا کردن چیکار باید بکنن تمام زندگی اونها حول محور این واقعیت چرخیده که بیمار هستند. افراد افسرده ای هستن که میخوان همیشه بیمار باشند. بسیاری از این افراد عقیده مظلومنمایی دارند. اونها دوست دارند که از دردها و عملهای جراحیشون حرف بزنن. هر وقت من و همسرم به مهمانی شام میریم من همیشه به میزبان هشدار میدم که موضوع صحبت مورد علاقه ما بچه های ما هستند و من دوست دارم که در مورد نحوه رفتارم با اونها صحبت کنم. چرا مردم دوست دارند از رفتارشون صحبت کنن؟ به این دلیل که ما عقده داریم که خودمون رو فدایی نشون بدیم. ما دوست داریم که بگیم یک روز سر زمستان بود وقتی اونها منو به اتاق عمل بردن ما تماماً داستان هایی رو برای اونها تعریف می کنیم که دل مردم رو به درد بیاری اینکه چطور اونها اومدن و ما رو, رو روی صندلی چرخدار به اتاق عمل بردن و تمام این چیزها رو تعریف می ما وقتی بیمار هستیم و مردم به ما توجه می راضی میشیم بنابراین شاید این سوال عیسی کاملا درست بوده که از او پرسیده آیا می شفا پیدا کنی خب بعضیا دوست ندارن وقتی عیسی از او پرسید که میخوای شفا پیدا کنی پاسخ او این بود. من کسی رو ندارم. هیچ کسی نیست که به من کمک کنه تا وارد و حوز بشم. همیشه یه نفر قبل از من وارد آب میشه. بعد ایسا اون مرد رو شفا داد. مرد به بستر بیماری داشت که سالها بود در اونجا پهن شده بود. روز سبت بود و یهودیان اجازه نداشتن که در روز سبت باری حمل کنن. اما ایسا به این مرد میگه بسترت رو جمع کن اون رو به دوش بگیر و راه بیفت. اون هم درست در مقابل معبد این باعث گفتگوهای عیسی با رهبران مذهبی میشه که در بابهای 5 و شش ادامه پیدا میکنه این گفتگوها جایی خاتمه پیدا میکنه و در باب 8 مجددا از سر گرفته میشه این گفتگوهای تند بین عیسی و رهبران مذهبی در بابهای 5 6 7 و هشت ادامه پیدا میکنه همه اینها از اون اونجای سرچشمه میگیره که عیسی در روز سبت به مردی گفته بود برخیز و بسترت را جمع کن و به راه بیفت. حقیقت اینه که مردی که 38 سال در بستر بیماری خوابیده بود از کار رهبران مذهبی تعجب نکرد. شاید فکر کنید که اونها باید میگفتند، او رو ببین. اون همون مردیه که کنار حوض بیت هستا بود. او مثل آدم های سالم به نظر میرسه. مدت‌های طولانی بود که اونجا بود. نگاهش بکنید. او خوب شده. آیا این عجیب نیست؟ تنها حرفی که زدند این بود هی آقا تو با حمل کردن بسترت قانون ثبت رو میشنی. اونها معجزه رو نمیدیدند چون که بر شریعت تمرکز کرده بودند اونا میخواستند بدونن که کی به او گفته که بسترش رو حمل کنه این عیسی رو درگیر این گفتگوی خصمانه با رهبران مذهبی میکنه اینجا نشانه دیگری در انجیل یوحنا هست که ما رو به وسط انجیل یوحنا میرسونه یادتونه که یوحنا در انتهای انجیلش به ما گفت که هدف او از نوشتن این انجیل این بود که ما متقاعد بشیم که عیسی همان مسیح پسر خداست وقتی عیسی درگیر این گفتگوهای خسمانه با رهبران مذهبی میشه خوبه که ما به تمامی ادعاهای عیسی در مورد خودش در این گفتگوها توجه کنیم هر بار که او در مورد خودش ادعای میکنه که کی هست و چی هست در باب پنج شش، هفت و هشت به اینها توجه کنیم وقتی به پایان باب هشت میرسید اگر تمام این ادعاها رو که عیسی در مورد خودش کرده یادداشت کرده باشید اون موقع به قول سی اس لوئیس استاد بزرگ ادبیات دوره رنسانس شما سه گزینه خواهید داشت یا میتونید عیسی رو دروغ گو خطاب کنید یا میتونید کمی ملایم تر باشید و او رو دیوانه خطاب کنید و یا میتونید او رو خداوند خطاب کنید و در مقابل پاهای او سجده کنید و او رو بپرستی اینها تنها هایی هستند که وقتی تمام اون ادعاهای عیسی رو که در مورد خودش کرده یک به یک بررسی کنید پیش روی شما خواهند بود. او حالا داره رهبران مذهبی رو برای این گفتگو آماده می‌کنه. او آماده میشه که این ادعاها رو بکنه و این ادعاها رو با معجزاتی همراه می‌کنه. خود معجزه داستان زیبایی هست. یوحنا در مکاشفه باب یک به ما میگه که کلیساها مانند هفت شمدان طلایی هستند. و در وسط این هفت شمدان او شخصی رو مانند پسر خدا میبینه او مسیح رو در وسط این شمدان ها میبینه که البته به زبان رمز میگه ایسا امروز هم میتونه در بین تمام کلیساهای خودش حضور داشته باشه مردان حکیم در ابتدای انجیل متا اومدن و پرسیدن او کجاست؟ ایسای مسیح زنده است و اکنون بر روی زمینه اما کجاست؟ یوحنا در باب یک مکاشفه به ما میگه ایسای مسیح در وسط کلیساهای خودش هست اینجا در یوحنا باب پنج عیسی تصویر زیبایی به ما میده در اطراف حوض بیت هستا شما جمعی کسیر از افراد علیل رو میبینید بعضی ها میگن این تصویر افراد علیل کنار حوض بیت هستا نمادی از کلیساهای امروزی هست باز هم استاد قدیمی من دکتر جی ورنون مکی میگه ما فکر میکنیم که قدرت در تعداد هست همه ما هستیم که اعضای کلیساهای ما اضافه بشه اما دکتر مکی میگه وقتی گروه بیشماری از افراد علیل رو یک جا داشته باشید این اسمش کلیسا نیست شاید بهتر باشه به اون بیمارستان بگیم تا کلیسا بیمارستان اجتماع افراد کسیری از بیماران و علیلان هست آیا ما میتونیم فکر کنیم که چون خیلی ضعف داریم قدرت داریم؟ آیا ما افراد ضعیف زیادی نداریم؟ اگر کاربرد در اینجا این هست باز هم شما می بیننید که همونطور که ایسا در بین افراد علیل کنار حوز حرکت می کرد، امروز هم او در کلیساهای خودش حرکت میکنه. اینجا که امروز میتونید ایسا رو پیدا کنید مسیحی مرد رو پیدا میکنه که ضعیفترین در بین تمام اونها هست و از او می پرسه آیا یا میخوای شفا پیدا کنی؟ کلیسا نمادی زیبا در این داستانه آیا شما بهلهلحظ روحانی عضوی از جمع جامعه افراد ضعیف کلیسا هستید، آیا احتمالاً ضعیف اونها هستید؟ آیا بیش از هر کس دیگری ضعیف اید و از این بیمار شدید؟ کاربرد اینجا اینه که عیسی در وسط کلیسا کلیساهاش هست و دنبال شما میگرده، دنبال ضعیف شخص که مدت زیادی بیش از هر کس دیگری ضعیف بوده. وقتی شما رو پیدا کنه میخواد بگه آیا بیمار هستید؟ و از این بیماری رنج میبرید آیا میخواهید که شفا پیدا کنید من همیشه تعجب میکردم که چرا عیسی همه رو در کنار حوض بیت شفا نداده شکی نیست که اون میتونست این کارو بکنه چرا او به همه اون جمعیت نگاه نکرد و نگفت همه شما شفا پیدا کردید بسترهاتون رو جمع کنید و از مقابل معبد عبور کنید و به خانه هاتون برید این واقعا میتونست رهبران مذهبی اون دوره رو بسیار عصبانی بکنه چرا او فقط یک نفر را نجات داد؟ من فکر میکنم احتمالا جوابش اینه که این مرد از پریدن به حوز قطع امید کرده بود. او فهمیده بود که من هرگز وارد این آب نخواهم شد. هیچ امیدی برای من برای رفتن به درون حوز بیت هستا وجود نداره. رو راست بگم من معتقدم که این خرافاتی بیش نبوده که اونها معتقد بودند اولین شخصی که به حوز به پر شفا پیدا میکنه. من فکر می کنم که حوض بیت هستا به طور تمثیلی تصویری از تمام چیزهایی است که مردم وقتی بیمار میشند برای شفا به اونها متوسل میشند. اونها سعی میکنند شفا پیدا کنند. خصوصا شفای روحانی سعی میکنند به روشهای گوناگون و از مکانهای مختلف حیات ابدی رو به دست بیارن. غالبا این مکانها و این روشها همانند حوزه بیت هستا هستند. اونها هرگز در اون مکانها حیات ابدی پیدا نمی کنند. عیسی اینو میدونه پس وقتی عیسی در بین مردم حرکت میکنه دنبال کسی میگرده که از همه چیز خسته شده و فهمیده که اون چیزها او رو شفا نخواهد داد مواد مخدر اونها رو شفا نخواهد داد الکل به اونها حیات ابدی نخواهد داد روان درمانی و روانکاوی به اونها حیات ابدی نخواهد داد اونها کمال و خوبی رو در مردم نخواهند یافت کمال رو در پول نخواهند یافت اونها کمال رو در موفقیت نخواهند یافت بسیاری از مردم تمامی حوزه‌های بیت هستای مذهبی رو امتحان کردند و میدونند که در اون مکان‌ها حیات ابدی وجود نداره اونها هستند که برای عیسی آمادن عیسی در بین افراد ضعیف حرکت می‌کنه تا زمانی که ضعیف‌ترین اونها رو پیدا کنه اون موقع دوست داره که به او بگه آیا میدونی که برای من با قدرتی که دارم این امکان هست که های تو رو به قوت و کمال تبدیل کنم. اگر به طرف من برگردی و به من اعتماد کنی، میتونم تو را کامل کنم. من معتقدم که این چیزی که با شفای این مرد در کنار حوض بیت هستا برای ما به تصویر کشیده شده. به محض اینکه این مرد به سرش رو جمع می کنه و به راه می‌افته، گفتگوهای خسمانه بین عیسی و رهبران مذهبی شروع میشه. اون گفت‌وگوهای خصمانه رو می در باب های 5 تا هشت یوحنا بخونید و به تمامی ادعاهای عیسی توجه کنید و بعد از خودتون سوال کنید آیا او یک دروغگو بود؟ آیا او دیوانه بود؟ یا همان کسی بود که ادعا می کرد؟ مسیح خداوند یا همان مسیح موعود؟ حالا از خودتون بپرسید آیا او رو به خداوندی خواهم پذیرفت؟ من معتقدم که اینها تنها گذینه هایی هستند که شما دارید. وقتی به نحوه شروع این گفتگوها نگاه می کنید با شفای این مرد علیل خودتون رو جای او بذارید شاید شما هم به لحاظ روحانی ناتوان هستید شاید حتی به لحاظ جسمانی ناتوان هستید این امکان وجود داره که در ضعف‌های خودتون قوت عیسی مسیح رو پیدا کنید حوض‌های بیت هستار رو رها کنید و به سوی عیسی برگردید به او بگید بله من میخوام که شفا پیدا کنم میخوام که به کمال برسم این هم باز تصویری از همون چیزیه که بهش تولد تازه میگی. در یوحنا باب پنج هویت ایسا ایمان و حیات به تصویر کشیده شده شما امروز میتونید همونطور که مرد علیل اعتماد کرد شما هم به ایسا اعتماد کنید و بگید بله خداوندا منو به لحاظ روحانی شفا بده من همه چیز رو امتحان کردم و میدونم اونها نمیتونن منو شفا بدن منو کامل کن و کمک کن بتونم امروز و هر روز تو رو پیروی کنم اگر امروز این تصمیم رو گرفته اید، لطفا به سرپرست گروهتون و یا به شبانانتون اطلاع بدید ما میخوایم کمک کنیم که در ایمانتون تون رشد کنید کلام خدا به ما میگه هر کسی که این هرکس شامل شما هم میشه هر کسی که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت و این با قلب است که شما ایمان بیارید و عادل شمرده بشید و به زبان اقرار کنید و نجات پیدا کنید دعا میکنم که شما قلبا ایمان بیارید و با زبان اقرار کنید که عیسی مسیح خداوند زندگی شماست. عزیزان دعای ما اینه که ضمن مطالعه انجیل یوحنا به شناخت بشید و او را به عنوان ناجی و خداوندتون بپذیرید و بعد در ایمانتون رشد کنید. اگه تو کنون تصمیم نگرفتید که از عیسی پیروی کنید و او رو به عنوان ناجی و خداوندتون بپذیرید امروز این کارو بکنید. از همه شما متشکرم که وفادارانه در بررسی کلام خدا با ما همراه هستید. چیزهای زیادی هست که باید از انجیل یوحنا یاد بگیریم. پس شما رو می میکنم از دیگران هم دعوت کنید که در این دوری مطالعاتی به ما بپیوندن. یادتون باشه ایسا همه رو می میکرد. پس پیرومانش نیز باید این کار رو بکنن. تا برنامه بعدی دعای اینه که فیض و محبت خدا رو با قوت در زندگیتون تجربه کنید. عزیزان امیدواریم اونقدر شجا باشید که بشارت ایسا رو به همه دنیا بدید و بگید که ایسا آمد تا تشنگان آب زنده رو سیراب کنه و شفای حقیقی رو برای شکست دلان و درماندگان به ارمقان بیاره.